بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی بی اندازه مهربان نهایت بارشه بگو او خدای یکتاست خدای بینیاز است نزاده است و نزاده شده است و برای او هیچ کسی سیال نیست